وصل من هرگز قصد نداشتم به پسرم کمک کنم خودش را بکشد حتی خواندن چنین این جملهای هم عجیب و غریب است شبیه جملاتی است که آدم فقط در مطبوعات جنجالی میخواند من آدمی نبودم که تن به چنین کاری بدهم یا دست کم فکر می کردم که نیستم زندگی من نظم طبیعی داشت. زندگی معمولی با میارهای جدید حدود سی و هفت سال قبل استفاج کردم. دوتا بچه داشتم سر کار میرفتم. به مدرسه کمک مالی میکردم انجمن خانه و مدرسه هم کاری داشتند و به محض اینکه بچه هایم دیگر نیاز چندانی به من نداشتند به عضویت هیئت غذاات درآمدم. حدود یازده سال قاضی بودم به زندگی افرادی که نزدمی می آمدن توجه می آدمهای نومیدی که حتی نمی توانستند آنقدر بر خود کنترل پیدا کنند که سر ساعت به قرار دادگاه برسند مجرمان همیشگی مردان جوان عبوس و عصبانی و از توان افتاده مادران مقروز وقتی چهره های همیشگی را می‌دیدم و خطاهایی که بارها و بارها تکرار میشدند، حس آرامش و همدلی برایم هم کار راحتی نبود. خودداری بشر از تلاش جهت عمل به وظایف و مسئولیت‌پذیری واقعاً دل سرد کننده است. و شهر کوچک ما برخلاف زیبایی قلعه، بناهای خاص و راه های بیرون شهری بینزیرش، از چنین معضلاتی در امان نماند. میدان هایی ریجنسی در تصرف نوجوانان مزد بود. صدای شوهرانی که زن و فرزند خود را کتک می‌زدند در کلبه های بامگالی پوش ما می‌پیچید. گاهی حس شاه کانیوت را داشتم که در برابر موجی از آشوب و ویرانی تدریجی اعلامیه بی سمر سادر با این همه شغلم را دوست داشتم. این شغل را انتخاب کرده بودم چون به نظم و انضباط و ضوابط اخلاقی اعتقاد داشتم معتقد بودم غلط و درست وجود دارد هرچند شاید چون این دیدگاهی را امروز دیگر قبول نداشته باشند کار در باغچه حیات خانه امروز های زندگی را پر کرده بود وقتی بچه ها بزرگ شدند باغچه خانه اوقاتم را پر می کرد. می توانستم نام لاتین تمام گیاهانی را که پرورش میدادید به شما بگویم. جالب این که من اصلا در مدرسه درس لاتین نخوانده بودم. یک مدرسه دولتی دخترانه که تکیهش بر آشپزی و گلدوزی بود. یعنی کارهایی که کمک می‌کرد زن و مادر خوبی از آب در بیایم. اما اسم آن گلها طوری بودند که در ذهن می مندند. کافی بود فقط یک بار اسمشان را بشنوم. تا همه عمر در خاطرم بمانند خربق نیجر گل سیریش ماده این اسمها را چنان راحت یاد که هرگز درس‌های مدرسه را نمی توانستم وقتی سن آدم کمی بالا می رود به گل و گیاه علاقه می‌شود و من فکر می کنم درست باشد به احتمال قوی چیزی است که به چرخه اصلی زندگی مربوط می‌شود. رویش دوباره بعد از زمستانی حزنانگیز چیزی کمتر از معجزه نیست نوعی خوشی و شادی که هر سال پیش میآید شیوه است که طبیعت در پیش میگیرد تا در نهایت قدرت نمودهای مختلف باغچه را نشان دهد گاهی اوقات وقتی زندگی زن و شویم یک جورایی بیش از انتظارم به همسیستی تبدیل شد باخچه خانه پناهگاه من شد، اوقاتی که مملو از شادی بود. راستش را بخواهید، حتی زمانهایی هم وجود داشت که باخچه اسباب ناراحتی میشد. هیچ چیز دلسرد کننده تر از این نیست که گیاهی بکاری اما بد ببینی که شکوفه نداد، گل نداد. یا ردیفی از گل‌های زیبای سوسن ببینی که نیمه شب توسط خاطیانی دقل باز تخریب شده است با اینکه باغچه وقتم را می‌گرفت و من از این بابت شاکی بودم انرژی زیادی صرف مراقبت از آن می‌کردم بعد از ارهایی که وجین می‌کردم مفاصلم درد می‌گرفتند و ناخن‌هایم هیچ وقت تمیز نبودند باز هم عاشق باغچه بودم آشق خوشی و لذتی بودم که از حضور در فضای باز نصیبم میشد شد آشق آن بودم آشق این بودم که زمین را زیر پایم حس می کردم از دیدن پدیده هایی که زنده بودند رشد می کردند و مسهور زیبایی موقتی خود بودند لذت می بردم بعد از تصادف ویل تا یک سال دست به باخچه نزدم دلیلش فقط کم بود وقت نبود. گرچه ساعتهای بیپایانی در بیمارستان سفری می رفت رفت آمدها وقت زیادی میگرفت و زمان در اتومبیل میگذشت گذشت. آه خدای من. ملاقاتها تمام وقتم را می گرفت. شش ماه مرخصی استراری گرفتم ولی باز هم کافی نبود. بعد یک بار دیدم هیچ فایده ای ندارم. باغبانی استخدام کردم تا به باغچه برسد اما فکر نمی توانسته باشم باغچه را به رونق برسانم چون فقط در بهترین فصل سال زیبا می شد که آن هم موقتی بود و این زمانی بود که دوباره ویل را به خانه برگرداندیم. ساختمان فرعی از قبل بازسازی و آماده شده بود اینجا بود که حس کردم باغچه باید دوباره زیبا شود باید چیزی برای تماشا به پسرم می دادم. باید خاموش و بیک به او می گفتم که شاید اوضاع تغییر کند بهتر شود یا بدتر ولی زندگی ادامه می آبد. باید به او می که ما جزئی از یک چرخه بزرگتر هستیم تقدیری که فقط خداوند از آن خبر دارد البته من نمی توانستم چیزی به او بگویم من و اویل معمولا زیاد با هم صحبت نمی کردیم برای همین باید نشانش می دادم. یک قول خاموش و اگر خودش بخواهد تصویری بزرگ تر که همان آینده روشن است استیون مشغول بود و آتش شمینه را به هم می زد. هیزم های نیمسوز را با مهارت تمام و به کمک انبور جابجا به می کرد. جرقه های فروزن به طرف دود کش کشیده می استیون کنده جدیدی وسط هیزم ها گذشت. بعد بلند شد و عقبیستد. کاری که همیشه می کرد. و با رضایت کامل به شعله هایی که زبانه می کشیدند چشم دوخت دستش را به شلوار مخملش کشید و تمیز کرد همین که وارد اتاق شدم صورتش را برگرداند. لیوان را به طرفش گرفتم ممنون جورجی پایین؟ ظاهرا نه چیکار میکنه؟ تلویزیون تماشا میکنه بهش گفتم بیاد پایین ولی حوصله کسی رو نداره میخواد تنها باشه بعدن میاد. فقط پرواز هنوز تو تنش مونده. امیدوارم. الان از دست ما کمی ناراحت. در سکوت ایستادیم و به آتش زل زدیم. اتاق تاریک و سکت بود. شیشه پنجره از باد و باران به تق و توق افتاده بود. چه شب گندی؟ آره سگ با قدمهایی ریز و نرم وارد اتاق شد زوزهی کشید و مقابل آتش فلو شد دمه روی زمین بود و با عشق به ما نگاه می کرد. استیون گفت چی فکر می کنی؟ اینکه که کوتاه کرده؟ نمیدونم. ولی دوست سرم یه علامت مثبت ببینم این لویز آدم جالبیه به نظر تو هم اینطوره. به شوهرم نگاه کردم که چه جوری داشت با خودش لبخند میزد از فکرم گذشت نه خیلی اما بعد این فکر را از ذهنم دور کردم آره آره فکر کنم به نظرت آدم مناسبیه؟ قبل از جواب دادن جرئهی از لیوان را سر کشیدم گفتم خدا میدونم واقعا دیگه نمیدونم درست و غلط چیه ویل ازش خوشش میاد مطمئنم خوشش میاد پریشب که داشتیم اخبار میدیدیم و حرف میزدیم دوبار اسمشو اورد در صورتی که قبلا از این کارا نمیکرد آره ولی مثل تو امیدوار نیستم. چرا؟ استیفن صورتش را از آتش برگرداند. میدیدم که با دقت به من نگاه می کند. شاید تازه متوجه چینهای جدید دور چشمانم شده بود و دهانم که آن روزها از استراب به یک خط باریک تبدیل شده بود. به صلیب طلایی دور گردنم نگاه کرد. چیزی که حالا همیشه به اصلا دوست نداشتم اینطوری به من نگاه کند. همش حس میگردم دارد مرا با کسی مقایسه می کند. من فقط واقعبیم. تو انگار انتظارشو داشتی. من پسرمون می شناسم. پسرمون. آره، پسرمون. اما در دل فکر کردم بیشتر پسر من است. تو هیچ وقت پشتش نبودی، خصوصا از نظر آتفی، تو فقط قایبی بودی که اون همیشه در تلاش بود به تو نزدیک بشه. استیون گفت تغییر عقیده میده، تا اون موقع خیلی مونده. همانجا استادیم، دوباره لیوان را سر کشیدم. یخ، در تزاد با گرمایی بود که از آتش می آمد. استیون به آتش زل زد فکر میکنم دارم چیزی و از دست میدم نگاه شوهرم به من بود سنگینی نگاهش را حس میکردم اما نمیتوانستم به چشمانش نگاه کنم شاید میخواست با من ارتباط برقرار کند. اما فکر میکنم حالا دیگر دیر بود او هم جرعه از نوشیدنیش را سر کشید. عزیزم فقط تا جایی میشه کاری کرد. بقیهش دست ما نیست. خودم خوب میدونم. اما واقعا کافی نیست. هست. به طرف آتش رفت. کندهی را علکی به هم زد. من هم برگشتم و بی از اتاق رفتم بیرون. خودش هم فهمیده بود که میرم. وقتی ویل برای اولین بار خواستهش را به من گفت، مجبور شد دوباره تکرار کند. چون بار اول مطمئن نبودم که حرفش را درست متوجه شده باشم. وقتی فهمیدم چه ای دارد، خاموش ماندم. بعد گفتم که مزخرف میگوید فوری اتاق را ترک کردم. واقعا امتیاز ناعادلانه است که آدم قدم بردارد و مردی را که اسیر صندلی چرخدار است ترک کند. بین ساختمان اصلی خانه و ساختمان فرعی دو پله فاصله بود و ویل بدون کمک نمی نمیتوانست این مسیر را طی کند. من در ساختمان فرعی را بستم و در راه روی خانه استادم. حرفای پسرم همچنان در گوشم زنگ میزد. شاید واقعا نیم ساعت هموتی استادم. ویل دست بردار نبود. همیشه ویل بود که حرف آخر را میزد هر باری که به دیدنش میرفتم توازایش را تکرار می کرد تا اینکه خودم را به زور راضی کردم دیگر هر روز به دیدنش نروم. مادر، نمیخواهم اینطوری به زندگی ادامه بدم. این زندگی انتخابی من نیست. هیچ امیدی به بهبودی من نیست. پس چه اشکالی دارد که بخواهم به شیوهی مناسب تمامش کنم. صدایش را می‌شنیدم و می توانستم او را در جلسات کاری مجسم کنم. شغلی که زندگیش را پربار می کرد و مایه فخرش بود. ویل مردی بود که عادت داشت صدایش شنیده شود. آدمی نبود که بپذیرد من به شکلی این قدرت را پیدا کنم که برای آیندهش دست بگیرم. طوری که دوباره مادر شوم، خیلی تلاش کرد تا رضایتم را جلب کرد. دین و مذهب نبود که مانع من می شود. گرچه این فکر که ویل را به واسطه یه خودش راهی جهنم میکنم، وحشتناک بود و به شدت آزارم میداد. به این باور رسیده بودم که خداوند، خداوند مهربان رنج ما را درک میکند و گناهمان را میبخشد. نکته ای ایست که هرگز نمی در مورد مادر بودن درک. مگر اینکه خود مادر باشید شما یک مرد بالغ را مقابل خود نمی بینید با برگه جریمه و کفش های واکس نزده و زندگی عشقی بغرنج بلکه بچه ای می بینید با ریش نتراشیده نامرتب و خود رأی که اطرافیانش زندگیش به یک نفر تقلیل یافته است وقتی به ویل نگاه می کردم، کودکی را می دیدم که در آقوشم می فشردم. خالصانه عاشقش بودم و باورم نمی شد به وجودش آوردم. بچه ی نوپایی می دیدم که دستش را به طرفم دراز کرده است. یک پسر بچه یه که چون با او به قولداری رفتار کرده اند گریه می کند. معصومیت می دیدم. اش و یک گذشته مشترک، اینها چیزهایی بودند که از من میخواست نابود کنم. یک کودک، یک مرد، همهی آن عشق، همه آن گذشته. بعد در روز ۲۲ ژانویه روزی که من در دادگاه با لیست بلند بالای از دل دوست ها و رانندگانه بدون بیمه. هم سرانه سابق گریان و عصبانی سرگرم بودم، استیون به ساختمان فرعی می رود و پسرمان را می بیند که بیهوش است. سرش روی شان افتاده و دریای سیاه و چسبناک از خون دور سندلی چرخ دارش را گرفته است. ویل یک میخه زنگ زده که نصفش بیرون بود و از نجاریه شتاب زدهمان باقی مانده بود پیدا کرده موچه دستش را رو روی آن فشار داده و بعد صندلی چرخدار را به جلو و عقب حرکت داده بود. تا اینکه موفق شد دستش را ببرد. اصلا نمی تصور کنم که آن روز به چه اراده توانست این کار را بکند. حتی وقتی هم که فکر می کنم شاید از درد زیاد دیوانه شده باشد. دکترها گفتند اگر 20 دقیقه دیرتر پیداش میکردیم تمام کرده بود دکترها با زبان بیزبانی گفتند که برای جلب توجه نبوده وقتی از بیمارستان خبر دادند که ویل زنده میماند پریشان و آشفته به حیات رفتم. از دست خدا حسابی بودم از طبیعت از هر تقدیری که این بدبختی را برای خانواده من رقم زده بود حالا که به گذشته نگاه میکنم میبینم لابد عقلم را از دست داده بودم در آن شب سرد داخل حیاتی ایستادم و همانجا لیوان توی دستم را پرت کردم وسط باغچه ولای گلها. یک بند جیغ می زدم. صدایم در فضا میپیچید. به دیوار قلعه میخورد و برمیگشت گشت و در دور دست تنین میداخت. به شدت عصبانی بودم. میدیدم هر چیزی که در اطرافم هست میتواند حرکت کند خم شود، رشد کند. تولید مثل کند. اما پسر من، نفس من، به زیبا و بای شکوه من نمی تواند. زمین گیر شکست خورده و رنج دیده است. زیبایی های اطرافم زشت بودند. مبتزل و شرم جیغ زدم. فریاد کشیدم و به زمین و زمان فوش دادم. فوش هایی که خودم هم خبر نداشتم بلدم. که استیون آمد و کنارم ایستاد. دستش را روی شن هم گذاشت. آنقدر ماند تا من ساکت شوم و خیالش راحت شود. درک نمی کرد. هنوز درک نکرده بود که شاید ویل دوباره دست به چنین کاری بزند. که شاید لحظه لحظه زندگیمان باید گوش به زنگ باشیم و در انتظار دفعی بعد. منتظر باشیم تا ببینیم این بار چه بلایی سر خودش می آورد ما باید دنیا را از دریچه چشم او می دیدیم خودمان را جای او می گذاشتیم و انگیزه قوی و ذهنیت خلاقش را درک می کردیم که او را وامی داشت تا به مصیبتی که موتور سوار لعنتی به بار آورده بود خاتمه دهد. زندگی من باید با این احتمال که یک بار دیگر چون این چیزی رخ دهد تطبیق می‌یافت و او دست بالا را داشت چون چیزی به غیر از آن برای اندیشیدن نداشت دو هفته بعد من به وی جواب بستد دادم واقعا دادم اشاره ی داشت.